محو کردن دردمندی بدن زنانه و جمعی چرا دردمندی بدن برای زن حجاب است دردمندی بدن معمولا جنبهی جمعی, جمعی و نیز جنبهی شخصی دارد جنبه شخصی دردمندی بدن باقی مانده ذخیره شده دردی عاطفی است که انسان در گذشته خود تجربه کرده است جنبه جمعی, جمعی دردمندی بدن باقی مانده ذخیره شده دردی است که روح جمعی افراد یک اجتماع و یا یک کشور در طول صدها و یا هزاران سال گذشته تجربه کرده است. دردهایی مانند بیماری شکنجهها، ها، جنگ ها، قتل ها، ها، ها و غیره. دردمندی بدن شخصی بهره ای از دردمندی بدن جمعی دارد. برای مثال، افراد بعضی از نژاد یا کشورها، که در میانشان فشار و خشونت افراتی چه از طرف دولت و یا از طرف مردم رخ میدهد شدیدتر از دیگران دردمندی بدنشان را بروز میدهند کسی که باقی مانده ذخیره شده دردهای عاطفی گذشته را در خود دارد و آگاهی ندارد که خود را با آنها یکی نداند مجبور است آن دردها را به تکرار تجربه کند چون این آدمی به سادگی مرتکب خشونت و یا قربانی خشونت می شود. آنهایی که شغل بیشرفانه شکنجه و اخس اقرار را در تشکیلات فاشیستی به دارند، معمولاً کسانی هستند که نتوانستند با دردها و شکستهای عاطفی گذشته خود کنار بیایند. به این افراد اصطلاحا ای می گویند. اینان هم قربانی خشونت هند و هم عامل خشونت. توجیهات گوناگونی که این گونه افراد برای کار خود میتراشند صرفاً ترفندهایی است برای تسکین خود. البته همه آدم‌ها بالقوه به بصیرت و روشنی و خدا دسترسی دارند. شاید کسی که دچار کابوس هست زودتر از کسی که خوابهای معمولی می از خواب بیدار شود هر زنی سرف نظر از دردمندی بدن خیش سهمی هم در دردمندی بدن جمعی زنان دارد مگر آنکه کاملا آگاه شده باشد این مشارکت از طریق تفرعن مرد نسبت به زن به بردگی کشیدن زن استثمار زن تجاوز به زن زاد و ولد از دست دادن فرزند و غیره طی هزاران سال حاصل شده است. درد عاطفی و فیزیکی که برای بسیاری از زنان پیش از شروع قاعدگی و در طی آن احساس می شود همان جنبه جمعی دردمندی بدن است که در این ایام بیدار می شود. گرچه این جنبه ممکن است در ایام دیگر نیز بیدار شود. این جنبه، جریان آزاد انرژی بدن را محدود می کند محدودیتی که قاعدگی بیان فیزیکی آن است اجازه بده درباره این موضوع بیشتر صحبت کنم و ببینیم چگونه می شود آن را به مجالی برای بیداری و روشن شدگی تبدیل کرد در ایام قاعدگی زن به شدت تحت تصرف دردمندی بدن خیش است این ایام و این دردمندی چنان انرژی دارد که می تواند راحتی زن را به وادی ناآگاهانی یکی انگاری خود با این دردمندی بدن بکشاند. بنابراین زن به طور فعال در تملک میدان نیرویی است که فضای درون او را اشغال می کند و تظاهر می کند که خود اوست اما البته خود او نیست. این دردمندی از زبان زن سخن میگوید از طریق زن عمل می کند. به واسطه زن فکر می کند. این دردمندی وضعیتی منفی را برای زندگی زن به وجود می آورد و از این وضعیت تغذیه می کند. این دردمندی به درد بیشتری نیازمند است، هرچه می باشد. من این روند را پیش از این توضیح دادم، این درد مندی می تواند خطرناک و ویرانگر شود این درد مندی بدن فقط درد است همین و تو درد داری اما درد خیش نیستی در زمانه ما تعداد روزافزون زنانی که در راه آگاهی کامل و بیداری سلوک می کنند بیش از تعداد مردان است ممکن است مردها سرانجام خود را به سطح زنها برسانند اما برای مدت زمانی قابل ملاحظه شکافی بین آگاهی مردها و آگاهی زنها وجود خواهد داشت زنها نقشی را باز میابند که نقش طبیعی آنهاست اما وضعیت در مردها کاملا متفاوت است زنها به طور طبیعی پلی هستند بین ذات متجلی هستی یعنی دنیای صورتها و مظاهر و ذات غیر متجلی هستی یعنی باتن هستی وظیفه تو به عنوان یک زن آن است که دردمندی بدن خیش را چنان استحاله ببخشی که دیگر هجابی بین تو و خیشتن خیش تو نشود البته باید با موانع دیگر از جمله ذهن مدام در فکر خیش نیز کنار بیایی. اما مهمترین مانع تو همان دردمندی بدن توست که رهایی از آن رهایی از یکی انگاری خود با ذهن نیز هست. نخستین نکته که باید به خاطر داشته باشی این است. تا موقعی که از درد و رنجهایت هویتی برای خود میسازی نمیتوانی از آنها رها شوی. تا موقعی که ای از احساس تو از خود را درد عاطفی تو شکل میدهد ناآگاهانه هر کوششی که برای شفای آن درد انجام میدهی بینتیجه میماند چرا پاسخ این پرسش بسیار ساده است زیرا تو میخواهی دست نخورده باقی بمانی و درد نیز ای از تو شده است تو نمیخواهی پاره تو از تو جدا شود این روند کاملا ناآگاهانه است و تنها راه قلببران بران آگاهیست وقتی ناگهان میبینی که تا به حال به درد و رنج خیش وابسته بوده دچار شگفتی میشوی هنگامی که این حقیقت را میفهمی رشته وابستگی را گسستی. درد دردمندی بدن که همان باقی مانده ذخیره شده دردهای عاطفی گذشته در ذهن است میدانی از انرژی است که همچون هویت در فضای درون تو خانه کرده است دردمندی بدن انرژی حیاتی است که به دام افتاده است انرژی که دیگر جاری نیست البته دردمندی بدن معلول حوادثی خاص است که در گذشته تو اتفاق افتاده است در این شکی نیست دردمندی بدن گذشته ای است که هنوز در تو زندگی میکند و اگر تو خود را با آن یکی بپنداری خود را با گذشته یکی پنداشته ای بدین سان برای خود هویت یک قربانی یک مظلوم را می تراشی هویت قربانی این باور است که گذشته از حال نیرومندتر است این باور که دیگران و آنچه آنان در حق تو انجام دادهاند باعث شده است تا تو چیزی شوی که همکنون هستی واجد این دردهای عاطفی و ناتوان از اینکه خودت باشی حقیقت آن است که تنها نیرویی که وجود دارد نیرویی است که در دل لحظه حال نهفته است نیروی حضور تو در لحظه حال به محضان که این نیرو را بشناسی این نکترانیز خواهی فهمید که تنها خود تو مسئول وضعیتی هستی که در درون خیش احساس میکنی نه کسی دیگر و اینکه گذشته هرگز نمیتواند بر نیروی لحظه حال غلبه کند بنابراین یکی انگاری خود با محتوای ذهن خیش مانع آن میشود که بتوانی دردمندی بدن خیش را مداوا کنی بعضی از زنها توانستند هویت قربانی خود را در سطح شخصی کنار بگذارند اما هنوز نتوانستند هویت قربانی جمعی خود را کنار بگذارند آنها مدام میگویند ببینید مردها چه بر سر زنها آوردند آنها درست میگویند و در عین حال اشتباه می کنند آنها درست میگویند زیرا دردمندی بدن جمعی زنان تا حدودی بسیار زیاد نتیجه خشونتی بوده است که مردها در طول قرنها و هزارها بر آنها اعمال کردند اما زنان اشتباه می کنند اگر بخواهند از این واقعیت احساسی از خود را شکل بدهند وانگاه خود را در حسار هویت قربانی جمعی زندانی کنند اگر زنی هنوز به خشم بیزاری و یا سرزنش چسبیده است پس او هنوز میکوشد تا دردمندی بدن خیش را حفظ کند این کوشش ممکن است به او هویتی ببخشد و او را ارزا کند یعنی همبسته بودن با زنان دیگر اما همین کوشش او را در اصارت گذشته نگه می دارد و مانع دستیابی او به خیشتن حقیقی خیش و نیروی بیکران آن می شود. اگر زنان بخواهند خود را از مردان جدا و مستثنا کنند به احساس جداییشان دامن می زنند و بدین سان نفس خیش را فربهتر می کنند. نفس هر هرچه فربهتر شود فاصله تو از حقیقت خیش بیشتر می شود بنابراین از دردمندی بدن برای کسب هویت استفاده نکن در عوض آن را به ای برای روشن شدگی تبدیل کن آن را به آگاهی تبدیل کن یکی از بهترین زمانها برای این استحاله ایام است. من مطمئنم که در سالهای آینده بسیاری از زنان از طریق همین ایام به ساحت آگاهی وارد خواهند شد این ایام برای بسیاری از زنان معمولاً ایام ناآگاهی است، زیرا آنها در این ایام تحت تصرف دردمندی بدن جمعی زنانند وقتی به سطحی از آگاهی رسیده ای می توانی در جهت معکوس حرکت کنی و به ناآگاهی بخزی اما این کار را نکن. در عوض سعی کن به سطح آگاهی خیش بیافزایی. پیش از این درباره روند اساسی این نکته سخن گفتم. اما بگذار دوباره آن را تکرار کنم. این بار با اشاره خاص به دردمندی بدن جمعی زنانه. وقتی می دانی که ایام پریود تو نزدیک شده است پیش از احساس نخستین علایم استراب دوره قاعدگی بیداری دردمندی بدن زنانه جمعی کاملا هوشیار شو و تا جایی که ممکن است در کالبد خیش ساکن شو وقتی نخستین علامت ظاهر شد باید آنقدر هوشیار باشی که پیش از ان که پریود بر تو چیره شود تو آن را در چنگ بگیری برای مثال نخستین علامت ممکن است تحریک شدید یا برق خشم باشد و یا علامتی کاملا بدنی هرچه هست آن را پیش از آن که بر تو چیره شود در طور توجه خود بیانداز. منظور آن است که نخستین علامت از حوزه توجه تو فرار نکند یعنی واقع شود بی آنکه تو متوجه آن شده باشی نخستین علامت اگر یک احساس هست، انرژی نهفته در پشت آن را احساس کن بدان که این احساس دردمندی بدن است در عین حال داننده نیز باش یعنی خود را به عنوان کسی که حاضر است و آگاهانه به این احساس مینگرد حس کن نیروی حضور خود را لمس کن وقتی حضور خود را به درون احساسی میبری آن احساس فروکش میکند و استحاله مییابد اگر نخستین علامت بدنی است توجهی که به آن معطوف میکنی مانع آن میشود که آنچه اتفاق افتاده است به یک احساس یا فکر تبدیل شود آنگاه همچنان آگاه باش و منتظر علامت بعدی دردمندی بدن بمان وقتی علامت بعدی ظاهر شد به همین شیوه بلا فاصله آن را به طور توجه خود بیانداز دفعه دیگر هنگامی که دردمندی بدن از حالت غیرفعال خود بیرون آمده و کاملا فعال شده است ممکن است برای مدتی مثلا چند روز آشوبی را در درون خیش احساس کنی این آشوب درونی هر شکلی که می‌خواهد داشته باشد مهم نیست تو حضور خیش را حفظ کن و قایب نشو توجه خود را کاملا به آن معطوف کن آشوب درون خیش را مشاهده کن بدان که این آشوب در تو هست از این دانستن منصرف نشو عین این دانستن شو به یاد داشته باش اجازه نده که دردمندی بدن از ذهن تو استفاده کند و بر فکر تو غالب شود تماشایش کن انرژی آن را در درون خیش احساس کن توجه کامل یعنی پذیرش کامل و تمام از خلال توجه مدام و پذیرش استحاله اتفاق میافتد. استحاله یعنی دیگرگونی بنیادی یعنی تبدیل شدن مس به طلا درد مندی بدن به آگاهی روشن و روشنگر تبدیل می شود همانطور که یک تکه چوب در مجاورت آتش آتش می شود انگاه دوره قاعدگی تو به ابراز شادمانه و مؤثر زن تو تبدیل خواهد شد ایامی مقدس برای تحول بنیادی تو ایامی که تو آگاهی ای را به دنیا می آوری به حقیقت تو درخشیدن آغاز می کند هم در صورت زنانه آن به عنوان یک الهه و هم در صورت جنبه استعلایی آن به عنوان تجلی ذات الوهی هستی که فراتر از جنسیت و فراتر از زن یا مرد بودن است اگر مرد تو به اندازه کافی آگاه است، می تواند به تو کمک کند با حفظ حضور کامل و تمام در این ایام اگر او حضور داشته باشد هرگاه که تو به قلم رو به ناآگاهی به که در ابتدای سلوک امری است طبیعی میتوانی از نیروی حضور او کمک بگیری و بلا فاصله به او ملحق شوی منظورم آن است که هرگاه دردمندی بدن موقتا بر تو چیره میشود شود چه در دوره قاعدگی و یا هر زمان دیگر شریک زندگی تو تو را با دردمندی بدنت اشتباه نخواهد گرفت. حتی اگر دردمندی بدن تو به او حمله ای کند او واکنشی نشان نخواهد داد و دست به ضد حمله نخواهد زد. او به حضور کامل خود در میابی زد. برای استحاله به چیز دیگری نیاز نیست. در سایر اوقات هنگامی که او خود را با ذهن خیش تطبیق داده است، این تویی که میتوانی به او کمک کنی و آگاهیش را از ذهن پس بگیری با برگرداندن توجه او به اینجا و لحظه حال. در این صورت یک میدان انرژی پایدار با فرکانس بالا و ناب مدام شما را دربر خواهد گرفت. نه توهم، نه درد و رنج، نه نزا و خصومت، نه آنچه شما نیستید، نه آنچه عشق نیست، هیچ کدام تا به تحمل این رابطه روشن شما را ندارند همه محو خواهند شد، آنگاه مقصود الهی و فرا شخصی آفرینش توسط رابطه شما محقق خواهد شد گرداوی عظیم از آگاهی که بسیاری را به درون خیش خواهد کشید